لا يا الحمد لله اللهم ارز شد که ما مجموعه یه روایاتی داریم که ترجاع دادن به معافقت کتاب و مخالفت کتاب در داخل خبر برای همین جهاز آیان متعبضی این شد ما گفتیم تمام این روایاتی که خود این شد که روایات دفتی و تقسیم میشه یه دهی شرباب تا آرزه. اونا کنیم یه دهی مطلقه اما خب توش همه که در بیا دارم مختلفه عبارفش. یکی از این لبایاتی که در اینجا باز باقی مونده بود روایتی بود که مرحوم کولینی نمیخوندیم یا نه داردن نخوندیم رو تو نخوندی زهنم مرحوم کولینی ان محمد نیحی استادیشون شما حدیث شمایه 16 مرموم کلیه این همی چون تو اصول آورد کتاب علم و اصول این محمد بن یکیان این عبدالله ابن محمد این عبدالله ابن محمد ظاهرم کندیون شده برادر احمد ابن محمد ابن ایساس احمد اشعری برادر ایز در نام عبدالله ابن محمد از توصیل سریح نداره ایشان. این شواهد نشون میده که ایشون هم وانند برادرش به ارام رفتن منابع مسادر شیعه رو از ارام قوم امردن. یکی از کسانی که میراث های ما رو از ارام به قوم امردن. همین آقای عبدالله این محمده تا بعد ایشون شوقت برادرشو نداره احمد فوقالاد مشهوره فوقالاد جیل و قدره یه اجمالا مثلا میشه اجمالا عبور میکرد نه اینجا داره اون رساقت اونجا ان علی ابن الحکم که واضحه شما همون کتاب علی ابن حکم به همون اونده ان عبان ابن عثمان ان عبدالله ابن عبیل یحفور سوان اون صورت حدیث خوندی به توضیحی ندارم بله حاضر سند مشکل زیادی نداره مشکل شوان همون عبدالله بن محمده یعنی اگر مشکلی باشه به لحاظ نسخه است که ممکن این نسخه نسخه مشروعی نبود قال فاعل این قائل این قال مرحوم علی ابن حکمه قال وحدث انی بن ابن عبدالعلا این این قال علی بن حکم یعنی مرحوم علی بن حکم به دو واسه از اون بعد بیهی واسه وحدث انی بن ابن عبدالعلا بعد نیزی شما بیشتر ابن این مطلب هم به خاطر تصریح عبارت بنغی برید را آل بریان علی بن الحکم، آن ابن اوسمان، عبدالله ابن قال قال علیان و حدسان الحسینم نقلعلیت تحسیل کرده است. قاضی روبرقاضی علیان اسم. البته برقی احتمالا مراد برقی پدر باشه یا مراد برقی پسر بسید چون کساب محاسم اینجور آمده الان گاهی و به شوارت میخوره که در گاهی پسر اینجور بزنم پدر باشه قالت برقی یعنی پدریشان چون برقی پدر ارز کردیم از ارام ها رو به قوم اورده بودم و برقی پسر که نیست سفری به ارام کرده باشه جزا اگر نحر رو کنه احتمال میده به نحر به جد روشه احتمالش هست سرف عبا عبدالله علیه سلام ان اختلاف الحدیث یرویه من نسخو به و من هم من لا نسب به البته سه ارز کرده این دواره اجوانه از فندش خوبه همه این و به و من لا نسخو به مقداری خیلی مشکله بحسن آیینی که قائل حسن مجل خبر سبب اوغلایی کنیم خلاق اون محل نیست قال ادابه را دارید قم حدیث فرجت تم له شاهدن من کتاب الله و من قول رسول الله صلی الله علیه و آله سلام لذا فنده ایجاکم به اوغلا بده اون رو به خودش برگردونی این من لا نسقو به شاید مراد مثلا پهل سنت باشه وصوب و علا وصوب مذهبی مراد باشه بعید مراد مثلا شخصی که وصوب بشه داریم یا یا بگیم مراد لانسته یعنی مجهور حال نمیشه بلا کسی که بشه وصوب به کلماتش نیست بخوایم قبول بکنیم ولو مشروطن خیلی مشه حالا یه حاله اگر دلیل ما مثل این ربایت باشیم توضیح دادیم نسبتش با ربایت شاهده کتاب الله تصویم این شر ما میگه مهم نیست چه باشه باشه مهم اون است که شاهده از کتاب الله و منقول رسول الله باش. تقریبا میشه گفت این احادیث نسبتا این یکیش بهتر از بقیه است از لحاظ سند اجمالا بهتر بهتره محمد بن مسعود حدیث شماره 17 مرحوم عیاشی در تفسیر السدير و فعلا شان روایت سدید رو میل در کتاب عیاشی جای نداریم آل قاله ابو جعفر و ابو عبد الله علیهم السلام سدید نه همون مؤمن پسرش همین طور این اولو بر اسناد داره. لا تصدق علیام ان لا باوا فکتاب الله و سنت نبی صلی الله علیه و آله و taala. این دلیل یه ترویج عبرت برای کار سره و خیرسرو. فعلا به طور کلی شماره 18 با مرحوم عیاشی ابن الحسن ابن جهره بعد نیستش مولانا اما خب مصادر فن کتاب عیاشی فدراوس انا ر عبد الصالح ایشونه این رواسه به امام موسى بن نسبت داده احتمالاً توی رساله اصلی عبدالحسن بوده یکی گوزار عبدالحسن کاظمی گوزار عبدالناصر ظاهرا اینطور باشه قال اداجه اکر حدیثان مختلفان و قصه ما علا الله و احادیثنا فعن اشبه ها خواه هم قومه ها فعبو باطن این از تفاق الله و سمت بقیه روایات ما را هم میگه باش حساب بکنید این کمی اضافه در حدیث حسن نجه در احتجاج تبرستی هم هست شما به زار همونه آلاشون جداش کرده برای جمع رضا احتمالاً در صدر ابوعبدر حسن بود گفته رضا تجیان احادیث مختلفه که عنا حالا کتاب الله و احادیث هم هم هم معلومه در زمان موسی جعفر یا حداد رضا اضافه بر قرآن و سنن باز چون از امام داخل و صادق زیاد رو باید شده یک کمی چار چوب رو مشخصتر گردن بر زوه کتاب رو سننت رو ما اگر بود قابل قبول بله فلا قلت و یجی اونن رجلان و کلاه ما سقتون به حدیثین مختلفین فلان نعلم ایهم الحق فقال الالم تعلم فموسه آن علیک به ایه ما ظاهرش تخییره ظاهرش اگر هر سره باشن یه تحجیب اینه که اون ترجیحه با کتاب و سنت دیگه اینجا نعامد فموست آن علیک به عیه ما اخر این یکی یه نقطه دیگه اینکه ما مضمون دیگری داریم حدیث شماره 21 الحارس ابن المغیر عبی عبدالله علیه السلام که از کتاب تب... تبرسیه قال اذن سنت من اصحاب کل حدیث و کل هم سره، فموعص آن علیک حتی ترالقائم فترد ده و علی. این زیگ دارن، این موعص آن علیک مطلق نیست. یعنی نه پیدا می‌کنم بر شما هر زود جهت امام زمان رو ببینید ازشون سوال بکنم. این حتی حتی ترالقائم چون دو تا هستن جهان نه ماله. چون دو تا حالا مغیره. بسری نسری آمده معلوم نیست اونی که اولش که حسن الجن اختلاف و اما این دوگومی واضح نیست آن علیک حتی ترقایم زارم شد موستان علیک گفته این اختلاف علایه ها لیل این مجموعه احادیس در ماده حسن الجن به لحاظ سند که امرش مبهمه چه در کتاب عیاشی، و چه در کتاب احتجاج و یک مقدارم خودش خالی از نیست و بیشتر به مسائل دیگری میخوره که بعد عرض از جمله روایاتی که ما داریم باز یک روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در کتاب احمالی این رو از مرحوم مفید نقل می‌کنه ان جعفر ابن محمد که مولا ابراهیمه ان محمد ابن عبوب این همه کتاب کلینی نیست حالا کتاب کلینی نیست ان محمد ابن عیسی ان یونوز یونوز خب خیلی دقیقه ان امر ابن شمر این جوفیستی نجاشی هم تضعیف کرده ان جابر جابر ابن عدیز جوفیست سه هست اما خب یا مزاری مثلا تامات قلبین از قاله. فی حدیثن ان قال انظر و امر نامجا اکم انا. فان وجهت موهل القرآن موافقم فخذو به. وان لم تجدو موافقم فردو به. وان شبعل امر عليكم فقفو انده و. وردجوه الينا حتّى نشره لكم من ذلك ما شوره لان. نمیشه که حدیث صحابه بگیره به خانه حمد نخواهیم ایم. چند اشور برگردونیم به ما از جمله احادیثی که در اینجا هست البته این حدیث میخوره که حالت تقیه درش باشه یه حدیثی است که از امام موسی بن جعفر خواستن شلون خواستان امورو تبیق راه علم و راه فرهنگی آشنایی و احکام دینی رو اما مثل کتب علی بسم الله الرحمن جمیع امور دنیا و دین امران امران لختلاف فیه و اجتماع و علی الضرورت اللہ تیسترون علیها ول اخبار المجمع علیها و یل غایت المعروض علیها كل شبه و المستنبت و منها علم و کل حادثت و امر و امران یحتمل و, و, و, و, و, و شک و این کار من غیر جهدن لسبیله و سبیله استیراخل اهل الحجه فما ثبت لمنتهله بیهی حجتون من کتابه بخ این کتاب رو اینجا تایید میکنه مجتمع ان علا تحویله ظالم مارد کنه تحویل تفسیر یعنی با یک تفسیره که اتفاق برشن او سنت عن نبی الله اللہ علیه و علیه وسلم لخت لاففی ها خیلی عجیبه یعنی مثلا 700 یک نواف باشه قطعی باشه او قیاس قیاسن تعریف العقول عدلهو حالا قیاسن کنید حالا روات عجیبیست باید این کسان در اختصاص مفید موازه سرن هم ندارن بستگرد در اول اغول هم با اختلاف مای روزه چون امر واضحی نداره فعلا دیگه چیزی راجع او خیلی صحبت نمی کن هر هم که این هم راجع بگیم از ورد بله. این تا اینجا کلیه روایاتی بود که راجع به مسئله محافظت کتاب و مخالفت کتاب صحبت یه نتیجه اول بکنید در مجموعی روایات یک این که این مطلب به پیغمبر اکلا نسبت داده شده که در اختلاف انصافن اثباتش برای پیغمبر خیلی مشکله با این روایاتی که داریم مضافل به که خدا آنمه همیشین چیزی رو به معتول نه همه علاوه بر این که ما اصولا حتی در فقه عامه هم شواهدی نداریم که قطعی باشه مثلا یک نفر به پیغمبر در این جور فرمود وجودی فرمود مثلا خود این مطلب رو نداریم مثلا بدرعیر رومین سوال کرده چون پیغمبر یک جایی یه طور جا فرمود یک جایی دیگه مثلا شاورا اخر نظری رومین که کتاب از رفتن یه سوال کردن حضرت به اینا چند صورت یه اینکه که دروغ گفته کلان پیغمبر یکیه دومی دو یکیش این که نازخ و منسوخ نشناخته درست که پیغمبری رفتی وقتی فرموزن بعدم نسوشن این شخص نشناخت از این که از جواب و از میشه خود رواد پیغمبر مختلف نیست از خود پیغمبر هم ندارن که آشمون دو تا مفلت هم بلید. ما چه کار بود کنیم این چون سآلاتی ای که شده همه بعدت پیغمبر یعنی بر نه تو مقام ثبوت لذا این که اینکه من مواقعا مواقعا در کتاب کلوبه مواقعا در کتاب و و از کردیم اون در بعض از موارد که و و زیاد که کس را به و دروغ زیاد بخن که پیغمبر من من کرده به علیه کردیم این پیغمبر من من کرده به زیاد نهار و ادعای داره شده. و متاسفان با اینکه ادعای تواسرم شده مفنش هم محل کلام بوده توی یک متن متمدن بوده توی یک متن نبوده و از کلیم این اختلاف از زمان صحابه همه هست اصلا زبیر نرومه از سباب رو منکره قبله توش نرومه غیر زبیر نرومه کردن متحمدن حالا یک مشکل اینه مشهدیان ای که در هیچ شواهد تاریخی واضح نیست که جز و سود در زمان خود ایشان بوده در حالی که سوار و شواهد قریش دار می‌کرده اون که در کتاب اهل سنت در به یک شخصی در یکی یک عشیره قبیله‌ای دختر نوابه رسول رسولان رو گفته بود زنی از اون ها بود که هم صدا پیرمرد پیرمرد گفتن نه این گفته بعد از هم این که شبیان در خیمش و دو در خیمش و خیمش یا و سوخت طرف سوخت ظاهرا این انث به ارتباران بعد از اینم قبول نشه اینکه صورت کل و اه در رسول الله حتی عام خطیبا قبولش این مطلب بسیار بسیار مشکل الان شواهد ما مع این مطلب نیست در محیمت ما به امیر معامین هم ننظر شده حق حقیقه و على كل کل صحاب نورا فما وافا کتاب الله با خود و ارد کردیم علا که مذاره فرداد میکردیم که این به الله ثابت باشه علا تقدیر که فرمو در ماجه همی کنم منی و کتاب این دوباره همش حملش بکنیم به یعنی پیغمبر می کنم اگر من سننی دارم تشریعاتی دارم این در ذوق قرآنه همونطور که اوز عرض کردیم مثلا در قرآن رضا مادر و خواهد در قرآن جوزا بیشتر ذکر نشد باید پیغمبر کنم یه رضا و یه نسب. این میخوره به ذوق قرآن مراد از این اینه یعنی اگر به شما نهت شد که من تشریع کردم سنتی رو قرار دادم تشریع من علا ظهر سنت من علا ظهر قرآنه و رضا مرز کردیم اهل سنت باقت از این موضوع بحث ما اصلا تفسیر ما با تفسیر احل سنت در سنت رسول الله فرم کنه چند برد کرد اونا معتنه در سنت نبی مثاله میست که پیغمبر از وقت گرفته و از کتاب استفاده کرده لکن در متن کتاب نیست و ما هم نمیفهمیم مثلا ما در کتاب میفهمیم خواهر رضایی مادر رضایی این که پیغمبر مطلبه رضا فرمودید از قرانه اینا واقعیه اما ما از قران نمیفهمیم روشن شد این تفسیر اهل سنت برای سنن نبی در روایت کثیره که نه سنن نبی تشریعش بیاد تشریع افعال رسول الله خود رسول الله تشریع کرده اون که در کتاب اومده فرائض سنن غیر از فرائض که وزنده آورده شده است پس بنابر این هرو ان تحول معنی حدیث اون میشه طبق این تصوری که ما داریم اگر بر هر چنین چیزی رو پیغام بر سر این به اصطلاح مطلب بین مضاف این که از خری حدیثوسیار معروف است سرنده به نام حدیثی که اکی اکی ال به از علی چوادار این ای که این داروستایی که هنگور میشیم و درمی علی که میگم مثل تخدیلیست پیانا کنم بعضی اشما میشین مثلا زیر این طرف لم میدید را ما بعد حدیث من را برای شما نهار میکنم این در کتاب و سنت نیست بهش عمل نمی تصادف تصلاح اون به اینه یعنی اون خود بگه دنبال این نباشینی در کتاب سنت باشین اگر حدیث حدیث منه باز قبول کنم علایه های انصاف قضیه فعلا شواهد ما راجب زمان رسول الله کافی نیست شواهد ما نسبت به هنی مومین مهمش همین حدیث سکونیه اونه که ما داریم که خب ما هم شبه این که حدیث کل حدیث سکونی روی نهیران تو مقاسب مفسرم بررسی کردیم و توضیح حوضی که هم خودش رو از روشنی نداره هم حدیثش رو از روشنی نداره هم کتابش رو از خیلی نداره مجموعا آنچه که ما الان درمیایم یعنی شاید مجموعه مصالحی بوده به همین نسبت داده میشده ایشون رو جمع کرده با این سران و عدهای ای از این روایاتی که الان در کتاب سکونی هست از بیراه میگم اصحابا نخر شده فکر میکنه نه حالا کله حقا الهه اینجا گفتم شما صدر اهل سنه در صحابه هست غیر از اینو به نظرم اونجام هست منحصر به ایشون نیست علامیه خانه الان تقدیر این که این سکونی هم قابل قبول باشه این به خاطر این که از همون عوائل کاملا واضحه از زمان صحابه شروع شد بحث های اشتهادی از قرآن یکیزی از قرآن یک جورو میفهمید مثلا فرصه آیه از کنوه هم نمید حیث و سکنتون که حق نفقه و مسکن برای متلب هست یه هست تو قرآن؟ لیکن آیا درباره طلاق خلیه طلاق رعیه حالا یک کسی برد طلاق خلی، طلاق باین هم حکم شمینه خب این همون بحث بود نه روزده از عمر که وقتی گفتن مثلا خانونو گفتن پیغنبر و برم گفتن که تو حق لنفره نداریش شو از طلاق باین داده بود عمر گفتون لا ندعو کتاب الله و سنت نبیه نه خوب درش بکنه لا ندعو کتاب خود در اصل نمی‌کره و اساساً نمی‌زنه کتاب الله نداریم کتاب الله ببین لا کتاب الله و نبی اجل لا از زد من اجل کلام امرات لا ندار. انها زد این مرادش از کلام الله ظاهرن اطلاق از کنون نست از خواهد خدایی اماره که در سوی کلام اطلاع در کلام رجعیه لیکن ایشون مخواست از کتاب الله اطلاع استفاده بکنه که مطلق کلام با این و رجعی ظاهرن از همون عهد صحابه که این بحث مطرح میشه امیرالمومنین المومنی الله علیه مخواستن زابستهی به برن بردن که اصولا کتاب الله و قرآن روی این اساس نازل شده که چارچوب های کلی رو تشکیز بده یعنی شما اون چارچوب های کلی باید تو کتاب باشه و ما و, و این نیست که موافقت کتاب یک معنا بده مخالفت کتاب یک معنا بده که آیه خویی دو رو جدا کردن عده از علما جدا کردن نه این نیست این مراد از مواقع از مخالفت، علاقت غیر ثبوتش عن الرمانی که شما از اون ثابت نیست. الان تقدیر ثبوت عن الرمانی مراد اون شاکوبهای کلی است. یعنی احکامی که شما بخواهید استنباط بکنید یا نسبت بدید، اینا باید مطابق در حدود کتاب خدا و حدود اون سنن کلی رسول الله باشه. مراد آیه مراد کلام امام سلام الله علیه اینه. و اما دقیقی روایات ما روایاتی که منبر و فاجر بود ثابت نشد اون که ثابت نشد یه روایت هم بود من نفسه بود من دانسته بود اونم این ساقا مشکله چون اصلا مثلا, مثلا کسی که قابل و نیست حدیث اون رو بگیریم چون مطابق با کتاب قبول رو کم تعددن خب خیلی مشکله اعتماد داره جل این آباشه مردم مولوی که جل کرده که با کتاب مخالص نرد این خیلی مشکله مگر اینکه من نسبو به و من لا نصفا به که نصفت هم سرش بر نبود سرگم نبود به معنای به اصطلاح اهل سنت و شیعه نسبو به یا یعنی شیعه لا نسبو به سنی مراد کنایه از اون باشه نه که مراد بود نه افرادی باشن که اهل سنت ولی ولکن دروغ نمیگرد ظاهرم احتمالا مراد این باشه و هر حال یکیش این که آیا واقعا نسبتش اون کسوم با خبر سره انصافاً این مشکله مرد اون نسبت اون کسوم مطلب که معافل کتاب و مخالف کتاب و اونی که معافل کتاب نیست حجت نیست مگر راوی سقه باشه این هم مشکله بعضی از روازات مشکله به این بود از این بعضی از رواز مشکله به عکسه، نسبتش به عکسه. که اگر ثقه نقل کرد مطابق کتاب قبول کنیم غیر مطابق قبول نکنیم پس سه تا احتمالاً تازه هم در برن نسبت بین این روایات و ولی خبر خود خبر هست این هم گذشت این با در نظر گرفتن آخرین اخر روایت ما که داریم که مثل نبدو رحمان باشه این مطلبی رو که من مطرح کردن بیشتر اقرب به اعتباره. که ثقه بودن کافی نیست ثقه باشه و مطابق کتاب اینطوری و با سوال و جواب و خصوصیات که نگاه مکنیم مطلب بهتر در میاد خلابونه تفسیری که مرمون استاد کردن و نتیجه یکیشون گردن دیمان خلابونه علاقه که به مطلب این هم راجع به اجمال قضیه به تعابیدی که در اینجا هست این که اول بخصورت که این مطلب مطابق کتاب و مخالف کتاب مؤثر هست در قبول رد خبر چرا هست نمیشه این کار کرد بگیم هیچ فرقه نمی کنم انصافاً از اخبار روی همین مخالفت با کتاب رن میشه و ما الان چند تار وقتم داریم که اگر مرد یا زن فوت کرد بعد از ازدباه بعد از عهد و قبل دخور مه نصفه میشه چند تار وقتم داریم که نصفه میشه مه کامل انصافش مطابق کتاب این دوبومیه که نصفه رجه چون در برقان تلاح آمده موزنه آمده در قرآن تلام آمده تلامی که قبل از بخوله مه رو نصف میکنه موسای آمده و دو طرف هم هم عددشون زیاده یعنی صحیح هم دوش داره یکی اجایی مشکل کنه همه هم میبکته انصابه نگه در سختش همید هم, هم عددش زیاده هر دو مثلا سه تا زیاده این منع خیلی دیگه زیاد هم هر دو صحیح داره هر دو هم, هم. یکی میگه موت قبل از دخول موجب تنسیف میشه یه اطایتون میگه موت قبل از دخول موجب تنسیف نمیشه خود ما ترجیح دادیم با عدل تنسیف به خاطر متبوعت با کتاب یعنی انصافا اونی که با کتاب و ظاهره کتاب مطابقه تنسیف نشدنه چون اگر کنیم مستوجب قاعده عقل تاثیر خودش رو میکنه چون در هر دین کار شرط کرده که مهر مثلا 1000 شهر باشه بعد 1000 تعبد آمد که در خصوص طلاق قبل از دخول نصبه به این تعبده مورد خودش قبول میکنه جای دیگه تحمیل نمیدید مثلا فست کرد فست واضحه قبل از دخول قطعا کار نمیده یا فوت کرد قبل از دخول این کار نمیده به لاخره پس این مطلب قطعا طور تأثیر گذاره چه در مواضع آرز و چه در غیر معرض آرز این گذار است، اما الان چوری نیست که خیلی گذار باشه، اینم دو تا. مطلب دیگری که هست از که این روایات در دو مرحله است، بعدیا هاش در موانو موفق کتاب، بعدش مخالف کتاب، مردم استاد که این دو تا را جدا کردن و هر کدوم رو جواب دادن، اصلا این سهول، این مشکله. چون بعضی این روایت هر دور داره ما کتاب الله ما کتاب الله همیتون دو طایفش بکنیم ظاهرن موافق لما بیمون خالقه این که دو تای رو بکنیم ما سمع اول استاد این هم مشکله این قابل قبول نیست نکته دیگه از این روایاتی که در این مقام داریم بعضیش تو باب تا عارضه بعضیش توی باب اصل خود داره مرموم استاد اونهایی که در اصل حجید خبره ارجازن به تعارض، گفتن همه بزن با با به تاروز در کفایی همه رو به حجی اون تعارض هم داده به حجی هم گفتید در اینقدر تعارض نیست مسئله حجی هست بلا حجی هست. در کفایی این کاره که این دو نحوه کاره. حالا چه کار بکنید؟ ظاهرن به ذهن میاد صحیحش همون که صنعه بود کفایی صحیح همون باشه. خلافا ما افراده و استاد و همه الله اون روایت تارو عارض باید باید اصولاً اصولا ما ارز کردیم اینی که ما بخواهیم غیر از این که در روایات ما خوندیم کن روایت اونی که مرجه ترجیح به کتاب داده به عنوان یه دون تقریبا روایت برایش خالی از روایت هم نبودن روایت بود یه کتاب قطع راوندی بود رساله ایست و فعلا ظهور خیلی و به دلستی هم در رساله اترابندی رحمه الله این تو بیاده کدش مضابقا به اشکالی که در روایت هست یه رضا اصولاً ترجیح دادم فره حجیت تعبدی و اصلا حجیت تعبدی میار کنون نکته فنی رو دار. در روایات ما میار نیامده چطور میشه حجیت تعبدی دیاره و لذا از کردیم کرارن و میرارن نه فقط این روایات کلیه روایاتی که با عنوان مرجح اوزه اینو مرجح ما نداریم این اشتباه شده ما اصلا روایات به خودشون علاجیه ترجیح نداریم که البته یه مدتی مثلا ترجیح های بود مثل قده شهر توسی بعدها بعد از علامه وقتی که یواشوش بین حدیث عمر بن حنظله کرد ترجیح به رد روایت او حنظله از همین سابق نیست روایت عمر بن حنظله که مشروط روایت در مقام هست اون هم در ترجیح نیست اول از ترجیح باید حجیت تعبدی باشه در غیر حجیت تعبدی اصلا ترجیح معنا داره تعارض معنا داره و در روایات ما حجیت تعبدی نیامده معنا داره تعارض بیاد. ما از کردیم چه قائل به حجیت تو بشیم چه قائل به عدم وجود بشیم مثل ما هم سیدمونت جایی جای تا تعارض نیست اصلا تعارض هر وجود تاب است این یه دو اینکه از که برای از ایمانش از که این اصولا در کلام شخص خودش معنا نداره ترجیح بده اصلا در کلام شخص واحد بیاد شما را تعبد بده و بعد ترجیح بده تعبدن اصلا عقلایی نیست مثلا به شما یا یک از شما درجی از صحبت که اینجور گفتی یه نوشتار هم از اینجور هست چاپ کرده اینجوری هست نه شارو بگه شما تعبد بگی مثلا بییشی شما یعنی من کلام خدا رو تعبد دور خیلی نیست فهم عقلایی بیاد خدمت امام صادق رو بگه شما اینجور امام تعبدن بگی خب که خیلی واقعا عقلایی به ذهن درست باشه لذات خواهی نخواهی وقتی دوتا کلام میاد طبیعتا در میگرده به بیان صحیح و فاسد مثلا در رواز داره که شما یه مثلی گفتیم بعد مثل دیگه ما می کنم به که صدوق هم همین راه رو پیش رفته در با مرجعات احد رو به انداز میکنه می اون نوار اول زمانی اون نوشته من اون اونی که آخر گفتن درست یا مثلا میگه اون نوار مشکل داره یا میگه میخوای نوار بگیری واسه مثلا دفتره از دفتر ما متواظع که این دیگه نمیاد تعبد بده بگه شما متعادل بشو هر دو بعدم ترجیح بده یکیش رو تعبدن انصافا من هیچ فهم و من به نظر من این نکته اوغلایی رو در نگاه امام نه بن اصلا در نظر نگرفتم درست رواتون و نظام امام اول میفرش شهر میگه دو از شما نعل شده امام می که یونزر اگر یکی چون که شازه خود به بین از و ده شازه نادر فه این نلمجمه علیه لاری بفی خوب قطعه خود اینا خیالکن لاری بفی اضافی یعنی به, به شاز لاری بفی به ذهن من لاری بفی یه نه اضافی حقیقتا لاری بفی این درسته اگر یک کسی شما این مطلب شما دو تا مطلب دارد چند نفر میگه مثلا شما در پران شرک هستیم 20 نفر بازه شما این مطلب یه نفر گفت یه نفر یا نفر نفر از اون مطلب میشینیدن خب برای شهر به خب. مراض روایت اینه خب ده قصد بکنم خب. مراض روایت دعلا هایون مقام بیان حجت, حجت. بی دیگر ان الله ها. متنبقه این نفته شدن تمیز و حجه انلاحجه غیر از باب تاروزه باب تاروز دوامش اینه که هر جو دارن هجدن اما تمیز و حجه انلاحجه یکیش هجد هست یکیش نیست اگر شما خیلی تمیز و حجه انلاحجه این باب تاروز نیست این روایت نهنزله و روایاتی که ما خوندی تماما مصدش ناظر به حجییته نه ناظره به شما دو تا حجت تعبودن داریم یک چیزی هم تعبودن من میگن اصلا کلن ناظره به قسمت نیست این هم نکته دیگری که در اینجا هست نکته مهمتری که باز در اینجا هست اون اینه که مثلا این بخیل مقصاق و در کلام همین روز این که ایشون فرحه نه کل حبت حقیقه و علا کل ثواب نورا فماو کتاب الله فذروح اما خارق کتاب الله فضرور یا فذروح یک نکته دیگری که در اینجا شما توی بحث عمر بن نحزله این نکته رو عرض کردیم در بحث وراثت شما توی بحث حساب هم گاهی اشاره کردید یه بحثی رو مطرح کردید که اصلا مخاطب امام مثلا در روایت عمر بن نحزله کیه آیا مخاطب عامه شیعه یا مخاطب فقیه ملاح این خود به نشدهره بین اصحابه کیه که تمیز بده نشدهره بین اصحاب و شا زناده. اون خود به ما کتاب چی تشریف بده وقتی همین رو موقعه نه علا کل حق کل حقه حقیقه اینه کی تشریفیده که حقه و علا کل ثوابه نورا وقتی میفهمه راه به این حق و ثواب رجوع به کتاب اللهه مخاطب حضرت کیه یعنی پس هر کسی که فقط قرآن رو میخونه یا مثل هرمی باشه بقول با قرآن بکنه این میتونه مثلا بگه بله این بازباهر قرآن میستود تمام شد دقت بکنیم یک مشکل دیگه روایات اینه که ما از خیلی در روایات اومد شواهد در روایات اومد نهنزده چون این نگفتن شواهد در روایات اومد که مخاطب حض خودمون رو ننزده یه مرد مرد که میتونه تشریز بده مطابق کتاب متابقه مثلا میگه شما روایتیسون میگه اگه با مطابق آمه است من نگفتن میگه خب به سلام گایی میشه مطابق با روایاتشونه اما حکام نمیگن یا گایی حکام میگن روایتشون نمیگه خب این معلوم کار مرد که فرد عادی که اینطوره بشنسته میگه اعتبار به خودم یکیه حکام آمه یا روایات آنه اما فران اعتبار به حکامه چون اونی که صورت تقییه تقییه در مقابل به حکامه لذا خوب درخفت بکنید ممکن است که در این روایاتی که ما در واقع موافقت کتاب و مخالفت کتاب مراد این موافقت و مخالفت آزی که افزایی شما تصبر میکنیم نباشه مثلا امیرالمومنین ما او قدس الله علیه تا خیری این شورای پوشی که حضرت میگه اگه شما خیلی به قرآن مراجعه کنیم باز به کسانی که مثلا حرفو تشریح سواب ثوابو تشریح دادن و نور الهی خب مثلا بخواهم بپرسم که به عبدالله نائمن مراجعه کنید به قران مراد این باشه نه اون مطابقت قرآن که به حسب ظاهره پس یک نکته دیگه اینا چند تا نکته پیمناوبش هستم به سود نکته دومی آخرین نقطه این است که اونی که ما میفهمیم چون این محله موسیقی بود دقت بکنیم مثل دیت غای احلسانه کتاب فقهی و نوشتار نداشتن پس اون شابهی کتاب الام داره پس مالک موتر داره و به طور اونی که در واقع بود این طور بود که در مدینه صادر میشد و در کوفه منتشر میشد و از یک طرف دیگه ارز کردیم مخصوصا اون حتی عوائل امر حتی زمان چون مثلا فقط مثل جاوره میادید جوفی یا بردی از افرادی که به خط قلوب نسبت داده شدن به زمان خودیشون هستن حتی زمان امام واقعه فری کم به اما زمان امام صادق متاسفانه در خود کوفه ادهی به نام شیعه بودند و خودشون رو شیعه میدونستن حتی از کلی مثل یا مصلاحه نکرد و کشش رو خودش به حساب برد. این کارا قرار شیعه بشن. باکه اینها یک دست کفریات رو به همین می نسبت میدن. مثل اظهار رفت امام نماشه نماز نمیخونه، روزه نمیگه تمام محرمات رو ارتکاب میکنه، شعارش هم این بود. همین روایت داره که فضلات عمر به امام صادق رو که اینا شعارشون اظهار رفت فس که امام فصنماشه، نماشه اینکه امام بشن، هر صلی پدر جواب درست اینی بود که چون این مطلب به نحوه گفتاری بود و شنیداری بود به نحوه نوشتاری نبود ائمه علیه مستقر و مثلا این مطلب در کوفه آمد حالا عوامل مختلفی بود مثلا میعنیم ندار افراد دیدن در کوفه چون ایرانی بودن همون افکار مثلا زرداشتی و مانویت و زند و زندی از قضا میکرمه زنده زند و عربستان و افکار مذتب مزد... و افکار مانی رو یعنی شاهاش مفیانه مفرح میکردن به هر حال ما این کاملا واضحه که ما در کوفه در زمان امام صادق افرادی داشتیم که عنوان تشیع رو به خودشون ورکی میکردن و که هیچی رو انجام نمیدهدن حرفهای های مزخرف صحبت های باطل محسوسا فت قلوب که از همون زمان هم شروع شد اینی که به ذهن میاد ائمه عليهم السلام در ابتدای امر امر رو آسانتر گرفتن این هم که بعد الان ما میبینیم اون قسمتهایی که مخالف کتاب واضح بوده الان در دست ما نیست مثلا الان در همین مفضل بنام در این ریاصاتی که نصيري های شام دارن کتاب هایی به مفضل نسبت به که کفر سریع توش واضح تناسخ میشه تناسخ را میگم چون تناسخ ما اون تناسخ باصل توش هست کفت توش هست نسبت اولویت و علم توش هست و الاخره این کتاب ها پیش ما بسودن جا نیفتاد ما توضیحات دادیم یه مقدار حتی از افرادی که الان روایاتشون پیش ما هست همین همین توحید مفضل توحید مفضل جا نیفتاد من از کلمه حتی شوید ترجم بکن مرغوم شیشتروسی حتی اسمشون برواده نجاشی کتاب را فکر می‌خواند کرد بکنیم، فکر بکنیم. کتاب توضیحی ایشان هست، نه در، اهل لجاجی ایشان نسبت دادن. خب این کتاب‌ها بوده که از جاهای دور دست، احتمالاً مثلا مصری، شامی به اصطلاح اسماعیلی‌های کسی اون نسبت دادن بینش، تا کتاب کتابو تولیدی کتابو خوب بشه، خوب منفذ کتاب‌هایی داره که خیلی نامربوط کفر سریع توش وجود داره. اینها یواش یواش بر اساس همین اسلا اهل بیت حذف شد گفتم بفهمید اینا اهل بیت می‌خواستن این مطلب بگن اگر می‌خوید در کوف چیزی رو به ما نسبت بدین اون در چارچوب قرآن و سنت ما از این چارچوب خارج نمیشیم این مراد این بود و لذا احتمالاً از عقایلی که در کوف شروع کردن نقل کردن و از زمان ما باقر ما الان احادیث موافقه کتاب رو خوندید برداره واضح نشان رو خیلی سنده واضح نشان. مال زمان امام باغیر و امام صادق و ظاهرش اینه که چون می در دفتر نه رو هر و هر ها واضح نبود حضرت صلی اللہ علیه این مطلب رو بیان میکردن که روایات ما باید در چارچوب کتاب سنت باشه البته این رو ما الان قبول داریم مجموعه یه روایاتی دید که آمده در این چهار کتاب هستنده یه مقداری ابهام داره مثلا برزنش داره آره فقط کتاب و خالقر آمد با هم دیگه عورده در برواید دیگه فقط کتاب تنها آورده. به نظر ما میاد که اینها ناظر به اون عنوان کلی بودن مثل دقیق لبی بوده دقیق لحظی نبوده تو خب وقتی وافق ال کتاب و خالف ال خب دو صورت دیگه هم فرض میشه که وافق ال آمه خالف ال کتاب خالف کتاب خالف و به عکسش هم سه صورت دیگه هم فرض ظاهرا نازره به اینها نیست نکات این لفظی نیست نازره به اصل هم فرض و بعدها مثلا زمان حضرت رضا یا موسیل جنفر چون دیگه چارچوبه های قرآن و سنت و حدیث احرقه ایف هم مشخص شده و دقیق بکنید یکی چارتو به کتاب یکی سنه یکی حدیث و رضا در روایت موسی جعفر داشت کتاب الله و قول رب نبینا و احادیثنا مایوش به این کلمه احادیث بعد اضافه کرده اینها همه مشو میره نقطه اساسی این تفاوت ما بین مکان صدور روایات با مکان انتشار روایات این تفاوت این مرحله این روایات شده مثلا پس های شفافه این کتاب نوشون نیاز نداشت حرف بزنه که از من کتابش کتاب ویژون بود قرار کردن پشت بود دیگه نیازی به این صحبت نبود اما چون احضر کلماتشون به نمو نروی بود این یک دو یه یعنی و شماش در کوفه اضافه به این که اشتباه نروی بکنن یاورش و چرخش به جعل و تحریف و دروغ و تزویر و اینکه ائمه به ما گفتن با اینا مثلا نماز نخونیم امام به ما گفته نماز مهم نیست شراب خوردنش مهم نیست یه ای این مشکلی رو که ایجاد کرد این بود دقیق میفرمایید اون چیزی که ما الان میفهمیم از مجموعه روایا همون که اجمالا در کتاب آمده ناظر به حجیت و لاحجیته مخاطب اون همه علماست معلومی است آمه مردم بتوان این نکات فنی و مرانی رو استدهار بکنن. این نکات باز نکات فنی با مجموعه شواهد کتاب سنته و این در اوائل عمر بیشتر برای تنظیم تفکرات شیعی بود بعدها هم چون در زمان مثلا روایت یونس چون ایشون یه مقدار از روایات اهل کوفر برد اونجا امام بود ذابطه دادن این روایت حضرت صادق یا اتفاقه رو با این میدیار ها بشنانست علایه اون چه که ما الان چون وقتم گذشت من مختصر بکنم مجموعا از این روایات و بلکه از کلیه ی روایاتی در وجه خبر ذکر کردن ما مبنیمون این بود که قبول خبر منود است به شواهد دقیق کردیم اینو رو کردیم به کلی این هم نشون بده یکی از شواهد کاملا مهم موافقت کتاب بسانده این البته ارز این مرشایی که اختلافی شد مرموم یونس نبله احمد ترتیب اثر می داد ادهی از روایات رو رد می کن شاید ما هم مثلا تو یک حدی بایشون موافقت باشیم یک حدی نه به هر حال اون چی که ما الان به دست میاد به هر حال مراجعه به مجموعه شواهده و انصافاً موافقه کتاب جز مجموعه و سنت جزء مجموعه شواهد و رفعیان به باب تعارض نداره چون هر این مجموعه شواهد قبل از حجیه ملاحظه بشه نه بعد از حجیه و یکی از عواملی که در